ازدواش کردی عزیزم نمیدونی چقدر خوشحالم که پیشنهادم و قبول حالا خودت میبینی واسه خوشبختی تو هر کاری از دستم بر انجام میدم بله البته مثلا حرفم وایسادم یه ماه اصل درست حسابی احسابی بله سه ماه میریم و میگردیم از کشورهایی که واسه ماه اصل میریم برای دوستامون کارت پستال میفرستیم همه چی همون جوری میشه که تو میخواستی اول اروپا رو روم، ونیز، میلان، نیز، پاریس، برلند چی؟ انگلستان؟ بله اونجا هم میریم بعدش آمریکا. حالا که تو دلت میخواد سه ماه فقط میریم دور دنیا رو میگردیم میخوام یه چیزی بهت بگم عزیزم بله همینطوری که تو آرزو داری سه ماه میری ماه اصل اما سه ماه زیاد نیست؟ نه بازم خودت میدونی اما میگم به جای سه ماه یه ماه بریم ماه اصل و با پولی که اینجوری واسمون میمونه یه خونه خوب و خوشگل بگیریم نظر چیه؟ چی؟ نظر چیه؟ پس راضی شدی آخ که تو چقدر خوبی؟ چه دختر خوش قلبی هستی ببین چی میخوام بهت بگم عسیزم. مثلاوا واسه چی میخوایم بریم خارج از کشور مگه نمیشه توی همین مملکت خودمون بریم مسافرت ماه اصل. اینجوری ارز همه در نمیدیم. حیف نیست؟ اولش میریم دریای سیاه بعدش میریم دریای مدیترانه رو میکردیم سفر با کشتی خیلی خوش میگذره خوب نیست؟ نظر چیه؟ تو فرشته عزیزم خودم میدونستم که قبول میکنی یه چیزی بهت بگم تو این دوره مسافرت خیلی سخته کشتی ها شلوقن. دریا هم موج داره بهتر نیست یه هفته با هم بریم بورسا و اونجا بمونیم نمیشه؟ نظر چیه؟ هم بهتره هم عرضونتره هم راحتتره آخ که تو قلبت از طلاست تو فرشته روی زمینی عزیزم مثلا واسه چی باید تو هتل ها سرگردون بشیم؟ با پولی که می‌خوایم بدیم هتل، واسه تو یه سنجاخ سینه گرون قیمت میخرم ها؟ اینجوری بهتر نیست؟ چی؟ فکرم به نظرت فوقالاده است عزیزم؟ آره هر جور که تو بخوای پنج هزار لیره؟ اگه بخوای ده هزار لیرهای شو باست میخرم مسافرت هتل موتل این چیزا میگذره میره اما اون هیچی نباشه مال آدمه میمونه با آدم. بله البته آخه تو ترین دختر روی زمینی حالا وایستا میخوام یه چیزی بهت بگم ببین مطمئنم از این فکرم خیلی خوشت میاد یعنی میخام بگم سنجاق سینه دیگه چه سیغهایه خودت که دختر اهل ذوقی هستی مگه نه مثل اون به دوران رسیده ها نیستی که بخوایی با این چیزا پاس بدی بیا از خرید سنجاق سینه صرف نظر کنیم با پولی که میخواییم بدیم واسه سنجاق سینه یه عروسی مفصل میگیریم که همه انگوش بده هم بمونن ها؟ نظر چیه؟ به خدای عروسی واسهت میگیرم ای نهو عروسی گریس کلی ملکه ای مونکا ها؟ که تو چقدر خوبی عزیزم عروسی؟ آره؟ چه چرس کنم بیاییم واسه تفریع و سرگرمی اینو اون یه دنیا پول خرج کنیم که چی بشه مثلا باید تالار بگیریم ارکست بیاریم شام و مخلفات و دسر و کلی چیزای دیگه که چی بشه یه ده بیان بخورن و برن و بعدش پشت سرمون بگن عروس دیدی یه وری میخندید بیا مثل آدم های عاقل رفتار بکنیم فامیلای رو دعوت میکنیم توی خونه عروسی میگیریم به خدا بهتر هم میشه پس به بهنظرت فوق العاده است آقلترین دختر دنیایی یه چیزی بهت بگم واسه چی مثلا باید چند صد لیره پول لباس عروس بدیم مگه قرار نیست این لباس تو عمرت یه بار بپوشی با پولی که میخواییم پای لباس عروس بدیم واسه خونمون وسیله میخریم پس به نظر تو هم آقلانه هست بله هم تا که تو گفتی بهتر از خیر عروسی بگذریم با پول عروسی آپارتمان میگیریم وسیله میخریم خونه رو مبله میکنیم. واسه تو کلی لباس میخرم اما نگاه کن یه دقیقه به حرفام گوش کن ببین چی میگم الان آپارتمان خیلی گرونه نمیخوایم پولمونو تو جیب مردم بریزیم که توی یکی از محله پایین یه خونه دو اتاقه میگیریم مثل آشیونه پرنده ها بله شایدم یه اتاق. آخه جمعیتی هم که نیستیم خودمون دوتاییم <تص> چی؟ حتما عخت کنون میخوای خب معلومه مگه بی عخت کنون هم میشه دوستاممون رفیقامون رو دعوت میکنیم اما باستا ببینم عخت کنون واسه چی؟ مگه ما به هم دیگه اعتماد نداریم عقد کنون یه جور قرارداد رسمیه مگه ما به همچی صنعت های احتیاج داریم ما هر دومون به هم دیگه اعتماد داریم بله عزیز من عخت کنون لازم نیست. با پولی که میخوام خرج عقد کنون کنم واسد لباس میخرم. البته بهترین لباس رو. میدیم خیاط درجه یک واسد بدوزه. باید گرون قیمت باشه. عزیزم دیگه تابستون شده و هوا گرمه نمیشه اون پارچه های سنگین رو پوشید. این پارچه ها رو نگاه کن. چقدر خوشگلن. رنگ به رنگ. گل باقلی. از همین پارچه فروشیه چهار متر چیت میخریم. هم ه تازه واسه چی به خیات بدیم؟ خودت میدوزی تموم میشه میره پیکارش چهار متر زیاد نیست؟ تابستون هوا خیلی گرمه، بیاستین باشه یه خود کتا اینجوری تر میشه، یه متر و نیم کافیه آخ که تو ترین دختر دنیایی، میدونی چی به فکرم رسیده؟ من راضی تو راضی گور پدر ناراضی حالا واسه چی باید خونه بگیریم خونه؟ اونم تو این دورو زمونه؟ مگر نه چیت نیست؟ اه... اونم لازم نداریم گرسنت شده؟ وایستا اینجا وسط ساندویچ بخرم آدم سم میخرم شلوپ بشلو ببین عروسی کردیم تمام شد رفت عزیزم این کار اونقدرها هم سخت نیست آخ که تو پپه دختر دنیایی آخه اگه پپه نبودی که با من ازدواج نمیکردی. بیا ازدواج کردیم تموم شد چی؟ باور نمی به جون خودم ازدواج کردیم <laughs>